اصل پنج استقبال عید بار اسفحان زودتر از تهران فرا رسید درختها ها شکوفه کرده و لاله ها در آمده بودند گلدان هایی که همسایه داده بود و کنار حوز گذاشته بودیم سبز شده بودند اید در راه بود همسایه ها میخواستند به دیدن ما بیایند ما هم باید به دیدار صاحب خانه میرفتیم اما دلم میخواست همچنان در خانه بمانم و هیچ لحظه ای از بحث ها را از دست ندهم در بیرون این خانه، در کوچه و خیابان عطر و بوی عید همه جا را پر کرده بود. در بازار نمی توانستم از جلوی مغازه هایی که به مناسبت عید تزئین شده بودند، راحت بگذرم. سمبل و لاله باز شده بودند، ماهی های سرخ و سیاه در تنگ بلورین چرخ می خوردند، سبزه های گندم قد کشیده بودند، سیب های سرخ در کنار پرتقال و نارنج میدرخشیدند. ماهی‌های سفید و دودی مشتری را به خود می‌خندند. وقتی از خانه تیمی بیرون می‌رفتم، دوری از خانواده را بیشتر حس می‌کردم. راستی، مامان الان چه کار می‌کند؟ سبز سبز کرده، خانه تکانی کرده و شیشه‌های پنجره را پاک کرده است. مامان که عیدها برای ما لباس می‌دوخت، برای تهیه دکمه‌های آن لال زار را زیر پا می‌گذاشت. و ما بچه ها را همراه می برد. من دوست داشتم خودم دکمه لباسم را انتخاب کنم. تکمه های رنگارنگ، صدفی یا قرمز با نگینی بران. گرد یا دراز، چقدر زیبا بودند. از دیدن آنها دل نمی کندم. مامان ما می گفت، نه اینجا چیزای خوب نداره، بریم مغازه بعدی. برای آنکه گم نشویم، دنبالش می دویدیم. او تکرار میکرد که دیر شده زود باشید اما باز هم جلوی دستفروش ها میستاد و برای خرید جوراب نایلون و بیگودی چانه میزد. صدای مرد دستفروش میآمد که داد میزد بیست و پنج تومن آتیش زدم به مالم بیست و پنج نمیدیدم چه میفروشد. دوتا پارچه را در هوا تکان میداد. مامان دستهایش پر بودند و ما بچه ها خسته و گشنه در این فکر بودیم که پس کی به ساندویچ فروشی خواهیم رسید، این قولی بود که مامان به ما داده بود، همیشه بعد از ساعت ها خرید به ساندویچ فروشی بزرگ سر لالزار میرفتیم و شکمی از اذا در میآوردیم. نمیدانم چرا از خاطرات گذشته همیشه به یاد دوران کودکی میافتادم و نه نوجوانی جایی خانده بودم کودکی هیچگاه ما را ترک نمی کند. این. ما ایم که کودکی را کنار می‌گذاریم. همسایه روبرویی شیشه‌ها را تمیز می‌کرد، فرش‌ها را در حیات می‌تکاند. ما هم قرار شد که یکی از فرش‌ها را به پشت بام برده و بتکانیم کمی هم شیرینی عید بخریم و این کار را زمانی انجام دهیم که همسایه ها در کوچه بوده و ما را شیرینی به دست ببینند. نیما که همیشه از این گونه پیشنهادها استقبال می‌کرد، مسئول خرید شیرینی شد. روز بعد نیما با دستانی پر از جعبه‌های شیرینی و آجیل به خانه آمد. برای باز کردن در رفته بودم که او را در حال سلام و احوال پرسی با همسایه کنجکاو روبرو دیدم. عقدس خانوم می عیدی ای ایدی نمیرین تهرون؟ نیما هم که انگار منتظر این سوال بود جواب داد سال اول کارم تو اسوانه نمیخواستم مرخصی طولانی بگیرم. همسایه فوری پرسید شما که تو اسفه اون اینقدر آشنا ندارید چرا اینقدر آجیل و شیرینی خریدیند؟ نگاهی سریع به دست های نیما انداختم بیش از پنج جعبه شیرینی و آجیل در دست داشت نیما یه حاضر جواب برای چند لحظه مکس کرد مانده بودم که چرا این همه خرید کرده است قرارمان این بود که تنها یک جعبه بگیرد ما اجازه نداشتیم پول سازمان را برای شیرینی و آجیل تلف کنیم اما فعلا باید جواب همسایه فضول را می دادن. آخه میدونید برای ما هر سال عید خیلی مهمون میومد. اومد. خب اینم از رو عادت بازم رفته خرید کرده. عقدس خانوم که همیشه چیزی توی مشتش داشت و از هیچ حرفی جا می گفت خب دیگه واجب شد که برای عید بیایم دیدنیتون. در دل گفتم عید داد بر من. عجب گرفتاری شدی. به خانه که آمدیم به نیما برای خرید پنج جعبه شیرینی و آجیل اعتراض کردم. با شیطنت و در حالی که میخندید جعبه ها را نشانم داد کدون خرید جعبه خالی هند. تعریف کرد که برای توجیه همسایه ها از شیرینی فروشی یک جعبه خالی گرفته بود. پس از کشف این ایده بکر فکر کرده است که چهار تا جعبه خالی دیگر هم بگیرد تا جلوه بیشتری داشته باشد اما فکر اینجای قضیه را نکرده بود که ما به خاطر قریب بودن در اصفهان نیازی به این همه جعبه شیرینی نداریم. حالا نیما مجبور بود برود و برای پذیرایی از همسایه فوزول یک جعبه واقعا پر از شیرینی بخرد. با شیطنت گفتم، اما این بار باید جعبه شیرینی رو یواشکی بیاری تا همسایه ها نبینند. در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن وقتی به ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن وقتی به نفشه را، با برگوریش و پیوند و خاک در جعبهای های کوچک چوبین جای میدهند جوی هزار زمزمه در درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها و روان جوی هزار زمزمه در درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان